ولم السيف ولم جبين بسم الله الرحمن الرحيم تمام حمد وصنا وستايش بخداوند يكتو بهمتا درود وصلوات فراوان على الله صلى الله عليه وسلم برادران محاجر و مجاهد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، به با برنامه امروز ما خوش آمدید خداوند زلجلال را سپاس گذاریم که به ما فرصت داد تا یک بار دیگر از طریق رادیوی صدای جندالله به خدمت دوستان عزیز قرار بگیریم بله هم کاری عزیز، امروز جمعه تاریخ دوی شعبان، مطابق 22 جون، رادیوی صدای جندالله نشرات فارسی خود را در برنامه از جمعه تا جمعه خدا کند که همیشه تحت رحمت الهی قرار داشته باشد و همچنان امیدواریم که داشته های برنامه امروزی ما مورد پسندش شما قرار بگیرد در برنامه امروزی سلسله اندرس ها مساحبه صدای الله با برادران مجاهید در بخش نظام اسلام موضوع ما مفتی مروارید هفته موضوع انتخاب شده مصیت فردی گاه منجر به فروپاشی جامعه خواهد شد وا حمنت ارتحلوا تيكفته با جند الله باشيد فعاد يهتز في عطفيه معتنقا يميد بين بنات الحسن نشوانا هذا الذي كان يرجوه وينشده فناله وحباه الله رضوانا فعاد يهتز في عطفيه, يهتز في عطفيه سلسلي اندرسها انتظاری نیکی از آدم بدزاد نداشته باش ایب خود را از دشمن بخواه از صحبت دوستی برنجم که اخلاق بدم حسن نماید کودشمن شوخ چشمی ناپاک تا ایب مرا به من نماید دخل و خرج انسان عاقل باید هماهنگی داشته باشد اگر باران به با کوهستان نبارد بسال دجله گردد خشک رودی ارزش مروارید به کمیابی آن است اگر جاله هر قطره دور شدی چو خرموره بازار از او پر شدی نیکی کردن به بدان هم خوب است بهشت با اخلاق خوش بدست می آید و و زخ برد مرد را خوی زشت که اخلاق نیک آمده است از بهشت خوش زبانی قدرت و شوکت است به شیرین زبانی و لطف و خوشی توانی که پیل به موی کشی ماهیت را نمی توان تغییر داد با کوشش نروید گل از شاخی بید به زنگی به گرما بگردد سپید حق گو و از ناسواب بپرهیز. به آدمی بهتر است از دواب دواب از تو گر نگویی سواب هر کس به اصل خود باز می گردد پرتوی نیکان نگیرد هر بنیادش بد است تربیت نا اهل را چون گردکان بر گم است خوب همکاری عزیز اندرس ها را به خدمت شنوندگان تقدیم نمودیم. خدا کنه که موردی پسندشان قرار گرفته باشد. بله همین طور می‌رویم به بخش دوم برنامه امروزی خود که در آن مصاحبه ها خدمت شما تقدیم خواهد شد. درست است. مصاحبه با مجاهدین از رادیوی صدای جند الله تقدیم می‌گردد. دعانی دعانی شوق من مصدره عمقو فلبی شوق شوق مصدره عزیز به بخش مصاحبه ها خوش آمدید خدا کند که جور و صحت بوده باشید از خداوند متعال در جهاد، هجرت و عبادات شما طلب برکت میکنیم شما را زیاد منتظر نمی گذاریم می رویم به سوی صحبت های برادران مجاهد الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعين و بعد فعوض بالله من الشيطان الرجيم وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا سبب برامدن من بجهاد نظر کردن به این آية متبركه كي به حضور شما خانم انا است قرآن بدیما اعلان میکند که یگانه مرجع امید شما که رسول الله صلی الله علیه و سلم در يوم قیامت یعنی امید شما است که در روز قیامت رسول الله صلی الله علیه و سلم واسطه فاعیت رسول الله دیگه جاهی نیست پس از این رو این آیت را که متوجه شدم گفتم اگر من امروز نخیزم بر علیه کسایی که به رسول الله صلی الله علیه وسلم و, و به کتابی که او به وسیله او به ما تقدم شده توهین صورت میگیرد پس فردای قیامت از ما هم رسول الله صلی الله علیه وسلم دیفانه میکن روز قیامت که روز خطرناک هست الله جل جلاله صدا می زند لمن الملك اليوم امروز پاتشایی از کیست از آن کیست هیچ موجودی نمیتواند که به کلام الله جل جلاله را جواب بریهد الله جل جلاله به زبان بلا کیف خود خود جواب می دهد لله لا Potsoja, imruus an az aani ukasiski wahidujatta, issedi kibahot tanarat. Musrika, Mushrikin,da ongiarat, mekunad, ei musrika, ei bad bahta, sumad, da ongiarat, mekunad, ei musrika, ei bad bahta, sumad, da ongiarat, mekunad, da ongiarat, mekunad, ei musrika, ei bad bahta, sumad, da ongiarat, mekunad, mekunad, mekunad, mekunad, mekunad, mekunad, mekunad, mekunad, mekunad,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 Bahuzuri حضور حمچو الله جل جلاله از ما چی بکنه شفاعت از این رو آیه را که به حضور dar تلاوت نمودم رسول گرامی صلی الله علیه و سلام در روز قیامت از sallallahu امت شکایت می‌کند چی میگه dahuzuri الله این قاومی که خود این mahjura, را مهجور، این قوم، این مردم، این امتی که به نام امت مبود در سراسر دنیا حتی این در قباط خودشان حق حتی این در کشور خودشان قرآنی را که به من نازل کرده بودی سوزانده میشد، عکس و تصویرش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 انا و روز زوژي خطرناک است كي ما قهار اسن بياين 4 vuotta me jo päiväsi, itse tänhaari, itse mielikäyty me teimme, jokainen puoli näkemistä teimme, että رسول الله صل الله عليه وسلم میخواه زندگی که قرآن میخواه باید شما با اون زندگی حرکت بکنیم ازی خاطر ما سبب امن شد که ما در اینجا آمدیم و دیگر نصیحتی ما توصیهی ما بدیگر برادران ما باید را عمیق نظر کی لفظ قران کی ذکر میشو لفظ ماناس یعنی لفظش هم یاد داشته باشی معنایش هم یاد داشته باشی زمانی که ما لفظ قران را خونیم معنای قران را فهمیدیم هیچ وقت ما در جای خود نمی‌شینیم بلند می‌شیم دفاع از قران می‌کنیم که قران چه قسم قران بود که زندگی ما را تضمین کرده آخرت دفع اصبر ان بکرا تا اخرن قطري خوري خود دفاع از رسول الله صلى الله عليه وسلم بکرا تا اين كه زندگي دنيا هم خوب شواد زندگي دنيا كار سازي باشد تیر ميشواد زندگي اخرت خوب شواد تزمين گاهي اخرت خوب شواد قصیدت شعیرین تنه بی و, بها و بها نظام اسلام شنواندگان محترم در بخش نظام اسلام خوش آمدید اگر برنامه های ما را در هفته های گذشته تقیب نموده باشید در هفته های گذشته ما در بخش نظام اسلام مستفتی و اقسام آن را به شما تشریح نموده بودیم اما در این هفته از نظام افتا بخشی مفتی و چگونگی آن را به خدمت شما تشریح خواهیم کرد با ما باشید. مفتی شروط لازم برای مفتی مفتی است که در برابر سوالهای مردم فتوه صادر می نماید و از آنجایی که افتا در حقیقت بیان و خبر دادن از حکم الله متعال است پس لازم است که مفتی احلیت و صلاحیت اصدار فتوه را داشته باشد. این احلیت را زمانی که کرده میتواند که یک سلسل شرطهای لازم برای افتار را در شخصیت خود تکمیل نماید. البته با صورت مختصر گفته می توانیم که شرطهای لازم برای کسب اهلیت احلیت این است که مفتی باید مسلمان بالغ، لغ، آقل، فقیه، مشتهید و از صفت برخوردار باشد. مرد بودن آزاد بودن و قدرت تکلم داشتن از شرطهای لازمی برای افتا به حساب نمی آید لذا فتوای زنان، غلامان و افرادی که سخن زدن می توانند نیز معتبر می باشد بعد از این اجمال می خواهیم شرح و توضیح در مورد این شرایط را ایرا نماییم اول، اسلام لزوم این شرط کاملا واضح و برای هر کسی قابل فهم است زیرا مفتی از حکم الله خبر داده و شریعت الهی را برای مردم توضیح و تبلیغ می نماید و احکام صادر شده از سوی او بر افراد و حوادث تطبیق می گردد لذا ضروری است که مفتی به الله و رسول او ایمان داشته و به شریعت الهی که محمد صلی الله علیه و آورده است یقین و ایمان کامل داشته باشد اینکه اسلام چی است و انسان چگونه داخل اسلام می گردد و نواقع ایمان کدام ها اند و در فقدان کدام مواردی انسان از داره اسلام خارج گردیده و مرتد خوانده می شود. تمام این ها مسائلی که در کتب عقاید به صورت تفصیل ذکر گردیده است و فیلن موارد بحثی ما نمی باشد. دوم بلوغ و عقلمندی مفتی باید از چنان عقل منور و تیزینی بر خوردار باشد که با وسیله آن احکام شرعی و شرایط محیطی خود را به خوبی درک و تحلیل نموده بتواند کمترین درجه عقل همان است که همراه و بلوغ ظاهر می‌گردد. به همین علت است که از شروط مواجه شدن با مکلفیت های شریع این است که فرد باید عاقل و بالغ باشد و بلوغ بدون عقل و عقل بتنهایی و بدون بلوغ کافی نمی باشد. زیرا رسیدن به این بلوغ نشانه پختگی و مرحله عقل است. با در نظر داشتی همین امر است که مکلفیت های شرعی مربوط به بلوغ دانسته شده است. و تکالیف شرعی بر پایی قابلیت فهم خطاب شرعی متوجه اشخاص می و فهم احکام شرعی و فتوا دادن در آن به فهم بیشتر ضرورت دارد لذا موجودیت قدرت تعقل در, در افتا تر نسبت بهره امر دیگری می باشد با در نظر داشت همین شرط است که در هیچ یک از مراحل تاریخ فقی اسلامی کسی را سراغ نداریم که قبل از رسیدن به سین بلوغ متصدی و امور افتا شده باشد سوم عدالت عدالت شرط دیگری است که موجودیت آن در شخصیت مفتی لازمی می باشد. مقصد ما از عدالت در این بحث همان حیات و ملکه ای است که شخصی مسلمان به آن مزین بوده و از لوازم آن این است که پابند اوامر و دساتیر شرعی بوده آنچی را شرعان مطلوب است انجام دهد و آنچه را شریعت ممنوع قرار داده از ترک نماید و از اعمال و اقوالی که سبب جریح دار شدن وقار، مروت و حیثیت انسان میگردد خودداری و از قرار گرفتن در مواقعی و حالاتی که مورد تهمت و سوی زن دیگران قرار میگیرد اجتناب کند. اخلاق و روشی او به نحوی باشد که سزوار علماء اسلام است. چهارم اشتهات شرطی اساسی و مهمی که علما موجودتی آن را در مفتی ضروری دانند این است که مفتی باید فقی و مجتهد باشد مجتهد کسی است که اهلیت و توانایی شناخت و استخراج احکام تفصیلی شرعی را از دلایل معتبران از طریق بحث و تحقیق و مقاینه ادله داشته باشد و بر اموری که برای اجتهاد ضروری است الهاته لازم داشته باشد البته برای ثبوت چنین احلیتی کسرت اشتحاد و استخراج مسائل زیاد از نصص لازم نیست بلکه موجودیت این توانایی و استعداد کفایت می کند و کسرت عمل و فعالیت در این بخش شرط لازمی به حساب نمی آید زیرا در چنین احلیتی موجودیت مقاومت و اساسات آن لازم است که عبارت از توانایی بس و استخراج احکام و شناخت آن از طریق تحقیق و استدلال در مسادر معتبر شرعی می باشد اقسام مجتهد علمای که اشتیاد را شرط اساسی در فتاو می دانند مجتهد را به اقسام مختلف تقسیم کرده و نشان دادن که کدام یکی آنها صلاحیت افتا را دارند آنها میگوین بعضی ها مجتهد مطلق و دی در داخل مذهب و تیدادی هم در نوی خاص علم به درجه اجتهاد رسیدند و بعضی ها در مسائل خاصی مجتهد پس به خاطر اینکه بدانیم کدام یک اینها صلاحیت و اهلیت فتوا را دارند باید هر یک آنها را واکا تفصیل بشناسیم اول مشتهید مطلق، در تعریف مشتهید مطلق گفته می توانیم کسی که اکثری مسائل فقهی و اصول فقه و آن را حفظ و درک کامل نموده و از جنان اهلیت کاملی برخوردار باشد که معرفت احکام شریعی همراه با دریل و سایر ملابسات آن برایش ممکن باشد. در این صورت اگر در اکثر مسائلی که استنباط کرده است به حق رسیده بود می تواند که فتوه البته در ماجیدت سایر شروطی که برای افتاح ضروری می باشد در غیر آن صلاحیت افتاح و قضا را ندارد دوم مشتهی در مذهب معین اینم مشتهی چار حالت داشته و هر حالتی و حکم خاصی خود را دارد حالتی اول آن است که در اصول و قواهد بحث و استدلال و استنباط احکام از امام مذهب خود پیروی میکند اما در احکام تفصیلی که امامش به آن دست یافته است از او تقلید نمیکند اینگونه گونه نیست حق دارد که در منصب افتا قرار گرفته و فتوا بدهد امثال نو نوع امام ابو یوسف و محمد در مذهب حنفی حالت دوم آن است که در مذهب امام خود مجتهد باشد و در تعیید مسائل وام به صورت مستقل استدلال کرده بتواند حالت سوم آن از که مشتهید به درجه دومی نرسیده باشد، بلکه در مرتبه اصحاب، ترجیه و تخریجی مسائل از اصول مذهب قرار داشته باشد و فقی امام خود را حفظ و دلایل آن را آمخته باشد و این توان را داشته باشد که اقوال و فتوهای امامش را تایید و به خاطر حقانیت آن استدلال نماید. سوم، مشتهید در یک نوع خاص علم. در تعین این نوع علم گفتند کسی که در قیاس ماهر بوده و شروط و مستلزمات و آن را به خوبی دانست می میتواند که در مسائل قیاسی فتوا بدهد. چهارم مشتهد در مسائل خاص آن است که در مسائل معینی در فقه به درجه اجتهاد رسیده باشد این شخص می تواند که در همان مسائلی که میداند فتوا دهد و از نظر ما چنین شخصی نباید بحث مفتی آم مقرر کردد اگرچه جایز است که در مسائل خاصی مطابق فهم خود فتوا ده خلاصه و نتیجه بحث خلاصه سخن این است که مدار اهلیت افتاب بر علم است علمی که مورد قبول بوده و مبتنی بر بحث استدلال و اشتحاد باشد پس هر کسی که از چنین علمی در یکی از مسائل برخوردار بود حق دارد فتوا بدهد. البته این سخن متوجه کسانی است که با تجزیه پذیرفتن اشتحاد قائلند. و این مورد تایید ما هم قرار دارد و کسی که حکم مسئله ای را نمی داند نباید در آن مورد فتح وادیهد اگرچه در بخشای دیگری احلیت را داشته باشد شنماندگان محترم، این بود احوال مفتی انشاءالله در هفته های بعدی بقیه موضوع ایدامه ادامه دهیم و السلام علیکم لا تسمعنا قريبا في مرابعه الله أكبر يا ثارت يا سينا لا تسمعنا قريبا مروارید هفته در بخش مروارید هفته خوش آمده با بخش جدیدی ما خوش آمده همینطور به موضوع جالیب ما خوش آمده همکار عزیز یک سوال بزینم آمده اجازه است؟ میشه به ما بگوید که بخش مروارید هفته چی وقت به برنامه افزوده شد؟ و شامل کدام موضوعات است بخش مروارید هفته در جمعه گذشته به برنامه ما افزوده شد که شامل موضوعات خیلی ها عجیب و غریب است خواهد بود بسیار خوب ادامه دهید البته قسمی که در شروع برنامه گفتیم در بخش مروارید موضوع ما معصیت فردیگاه منجر به فروپاشی جامعه خواهد شد برخی اوقات شویی گناه یک برادر یا مجبوی برادرها چنان انسیرا یت میکنند که همه جماعتی اسلامی را فرا می گیرد یا مصیبت و شکست را به بار می آرد. یا انگیزه آزمونی طاقت فرسای برای جماعت اسلام می شود به خصوص هنگامی که گناه از کبائیر باشد یا از سوی قایدین و رهبرها انجام شود یا از سوی جماعی اسلامی این کار شرعی کامل صورت نگیرد و یا با صدق اخلاص توبه و از آن کرده نشده باشد خداوند چیزی با در کتاب ارجوند خود مهربانی میکند و تقو فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه و از ای که تنها به ستمکاران شما نمی رسد بترسید و بدانید که خدا سخت کیفر است ببینید زمانی که نگرانی عمیقی در غزوه احد نماییم درخواهیم یافت که عاملی اساسی شکست مسلمانان در این غزوه معصیت و نافرمانی برخی از تیراندازها بود که تعدادشان بیش از چهار فیصد از مجموعی لشکر مسلمانان را در این غضب تشکیل نمیداد. و می بینیم که نتیجه این معصیت به چی سرحت کشید هفتاد یار گیرامی آن حضرت شهید و شکمهایشان چیر کرده شد گوشها و بینیهای برخی دیگر بریده شد خود آن حضرت صلی اللہ علیه وسلم مجروح روی مبارکشان زخمی و دندان مبارکشان شهید گردید با وجود این همه سهلنگاری ها باز هم خداوند جل جلاله ایشان را مورید عفو قرار داد چنانچه قرآن کریم خبر می ولا قد عفا عنكم واذ شما درگذشت مرد از حسنی بصری رحمه الله سؤال نمود چگونه خداوند جل جلاله آنها را مورید عفو قرار داد در حالی که هفتاد نفر از ایشان به قتل رسید حسنی بصری رحمه الله در پاسخ گفت اگر عفو الهی شامل حالشان نمی‌گردید همه ای ایشان را به خل کند می نمود همه این مصیبت ها نتیجه شومی گناه و فرجام بد آن می باشد چرا که قران کریم بیانگر این مطلب است اولا ما اصابتکم مصیبته قد اصبتم مثلیها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم و یتون به شما در نبرد احد مصیبت رسید با آنکه در نبرد بدر دو برابرش را به دشمنان خود رساندید گفتید این مصیبت از کجا به ما رسید بگو آن از خود شما و ناشی از به انضباطی خودتان است و خداون جل جلالهو در آیه دیگری می‌فرماید: فرماید حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و من بعد ما اراکم ما تحبون تا آنکه که شدید و در کار جنگ و بر سر تقسیم غنائیم با یک دیگر به پرداختید و پس از آنکه که آنچرا دوست داشتید یعنی غنایم را به شما نشان داد نافرمانی نمودید و این معنا یعنی معصیت و نافرمانی در غزوه حنین نیز به وضوح دیده می شود زیرا برخی افرادی که از جمله طلاقا بودند به کثرت عدد و عده شان فخر کردن و نازیدان را شروع کردند تا آنکه بعضی ازشان گفت لن نغلب اليوم من قله امروز از کمی افراد هرگز مغلوب نخواهیم شد و فراموش کردن که فتح پیروزی در اول و آخر از آن خداست است. لذا این سبب شد که مسلمانان در اول معرکه بشکست مواجه شوان. و نتیجه آن شد که قرآن کریم بیان می‌دارد: و یوم حنایین اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم واللي تمدبرين. و در روز حنایین آن هنگام که شماری زیادتان شما را به بشگفت آورد بود. ولی به هیچ وجه از شما دفع خطر نکرد و زمین با همه فراخی بر شما تنگردید گردید سپس در حالی که پشت به دشمن کرده بودید برگشتید لذا هر جامعه اسلامی که خواهانی تمکن و اقتدار در سرزمین خداست باید اهتمام و توجه لازم به تغییر منکرات در داخل صفوفش بیشتر از تغییر منکرات در جامعهایی که در آن معیشت و زندگی میکند داشته باشد زیرا اگر در مرحله نخست کامیاب و پیروز شد، در مراحل بعدی یقیناً پیروز خواهد بود، اما در مرحله نخست اگر ناکام شد، در مراحل بعدی بدون شک روبه ناکامی خواهد بود. و پیش از این که سخن از معاصی را خاتی مبخشیم، باید بسوی حقیقت مهم متوجه شویم و اوی این که هدف از معاصی، نه تنها معاصی ظاهری، بلکه معاصی باطنی، مانند ریا، عجب، حسد، محبت جاه و کیور نیز است. زیرا برخی اوقات اخیری خطرناکتر از اولی می باشد. چرا که معاصی باطنی همچو سرطان با سرعتی بیشتری در جسم تأثیر گذاشته بدون اینکه بیمار یا اطرافیانی او احساس درد و الم کنند او را از بین میبرد که در این هنگام نپزوشکه به درد او می خورد و ندوا. ببینید، جزعاج بوخت پسندی سبب شکست مسلمانان در غزوه حنین چیزی دیگری نبود. باید جامعه اسلامی از همه معصیت ها برحذر باشد و بر قائدین لازم است که دل های خود را پاک نموده در صددی پاک نمودن دل های برادران و سپاهیان خود به هر وسیله ای که اسلام آن را مشروعیت بخشیده است باشند این بود موضوعی منتخب ما در بخش دی هفته خدا کند که استفادهای نیک برده باشید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 بنائه والبخل في مال الشحيح يزيد فلا تلتمس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 27 رجب مطابقی هفته ایجون در نتجه عملیات کمینی مجاهدین در ولایت فرا پانزه اسکر نیرهای ناتو کشته و دهتن دیگر جراحت برداشتن گفته می شود که شروعی عملیات با انفجار یک ماین شده تلفاتی رسیده در این عملیات به دشمنان اسلام از بین رفتن 5 تانگ و چار موتر جیپ می باشد روز دوشنبه 28 رجب مطابقی هشته ایجون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 فرید احمد فرهنگ فر항 سخنگوی والی هلمند بر رسانه های کوفری گفت که در این رویداد 8 تن کشته و پنج تن دیگر زخم برداشتند روز سه‌شنبه 29 رجب مطابق نوزده جون در ولایت کونهر عملیات شبانه نیروهای ناتو بالای مجاهدین سبب بهوقفه وسن جنگ بزرگی میانی مجاهدین مراتو شد که در این جنگ هشت اسکر آمریکایی کشته شدند در همین حال در اثنای جنگ یک مجاهد با سوی تایرهای بدون سرنشین فایر نموده و وی را سقوط داد با تاریخ مذکور شش برادر استشهادی با استفاده از سلاحهای ثقیله و خفیفه در یکی از مراکز نیروهای ناتو در ولایت قندهار هجوم بردند این جنگ تقریباً 6 ساعت دوام نموده سه ژنرال اردو ملی که اسم یکی از ایشان عبدالقضوس بود کشته و شش تن دیگر جراحت شدید برداشتند با تاریخ مذکور نظر به گفته های حکومت حملات مجاهدین و این انفجاره در مناطق جنوبی افغانستان افزایش یافته است مقامات میگویند که مجاهدین یک قرارگاه ناتو را در جنوب افغانستان هدف قرار داد و یک مجاهد که لباس قوای نظامی افغان را تن کرده بود یک اسکیار آمریکایی را هلاک کرد اکثریت واقعیت‌ها روز گذشته در ولایت کندهار گزارش شده است افرادی که پلیس افغان را پوشیده بودند روز دوشنبه بر اساکار آمریکایی گلوله‌باران کردند که یک تن آن را کشته و هشت تن آن را ساختند با تاریخ مذکور خامد کرزه چهار آزوی اکادمی علوم افغانستان را خاطر توهین به قوم هزارت در اطلاس نجات شناسی از وظیفه سبک دوش کرده است. روز چهارشنبه، شنبه رجب مطابق بست جون وزارت دفاع افغانستان از آغاز یک عملیات جدید زیر نام نوید به همکاری های امنیتی کشور خبر داد مرتضى جنرال ظاهری عظیم سخنگوی این وزارت روزی چهارشنبه در یک نشست در کابل گفت که این عملیات در تمام کشور مورد اجرا قرار خواهد گرفت مرتضى عظیم در مورد میگوید عملیات افغانز دفتر ارکبار اقامت حالا عملیاتی به تمام قلوبای و فرقا و جسمای مربوطه ارسال شده و اکنونشان حل و کش نمود با گفته مقامات وزارت دفاع عملیات نوید برای مدت 18 ماه برنامه‌گذاری شده که با گفته ایشان یکی از عملیات مهم در افغانستان میباشد با تاریخ مذکور نظر به گفته های حکومت در نتیجه حمله هوایی نیروهای ناتو در ولایت کنر 21 از مجاهدین شهادت رسیدند. سخنگوی والی کنر در یکی از رسانه های کفری گفت این حملات در ولسواری و تپور و مایگال پس از اون صورت گرفت که مجاهدین بالای نیروهای ائتلاف حمله کردند. با تاریخ مذکور مقامات ولایت پروان میگویند که در اثر حسابتی یک راکت بر یک منزلی مسکونی در والوسولی سیاگردین ولایت دو تن کشته و یک تن دیگر زخم برداشته است عبدالبصير سالنگی والی پروان در یکی از رسانه های کفر گفت که این راکت بعد از روز 4 شنبه به واسه مجاهدین پرتاب شده است اما تاکنون مجاهدین در مورد تفسیری نکرده اند با تاریخی مذکور یک حمله ی استشادی در ولایت خوس دها کشته و زخمی بر جا گذاشت فرماندهان امنیتی ولایت خوس در یکی از رسانه‌های کفرگوفت حمله کننده حین عبور کاروان نیروهای افغان و بین بین‌المللی خود را در منطقه اسپین جماعت ولایت خوس منفجر سا یک منبع امنیتی که نخواست نامش گرفته شود به رسانه‌های کفرگوفت در این عملیات دو پلیس کشته و بیش از 10 تن دیگر زخم برداشتند همچنین مسئولین شفاخانه ها در ولایت خوس گفتند تا حال 18 کشته و سی 36 زخمی به شفاخانه ها آورده شده‌اند روزی پنشنبه اول شعبان مطابق 21 جون جمهور افغانستان در یک اقدام سابقه نشست را به اشتراک قواهای سیگانه کشور روزی پنشنبه در ساختمان شورای ملی کشور برا انداخته و به سخندرانی پرداخت در این نشست کرده بدساورته و ناکامیهای ده سالی حکومتش اشاره کرد و گفت که تلاش میکنه که در مدت دو سال آینده حکومتش کارهای موثر را انجام بدهد و گفت که انوس هم در بسیاری از مناطق کشور قماندون سالاری زورگویی و فساد اداری وجود دارد خارزه میگوید تم است و با تاریخ مذکور در اثر سرریز شدن سیلاب ها در ولایت فاریاب 12 تن کشته و چهار و چهار تن دیگر لا درک شده اند ترکیه 29 رجب مطابق 19 جون بر اساس از ترکی حداقل هفت سربازی ترکی در اثر حمله ناگهانی ملیشه های کرد در قرارگاهشان کشته و پانزده تن دیگر در این ویدا زخم برداشتند این حادثه در ویرات اکوردی در نزدیکی سرحد ترکیه با ایران و عراق رخ داده است گزارش شده است که اردی ترکی عملیات جوابی را آغاز کرده که حملات زمینی و هوایی بر ضد ملیشای کرد را در بر دارد هزب کورگرانی کوردستان از 30 سال بدین سو برای خود مختاری بیشتر کوردها در جنوب شرقی ترکیه می‌جنگند که در این خوشنتا تا حال حدود 45 هزار تن کشته شده‌اند. پاکستان روز شنبه 26 رجب مطابق 16 ژوئن در نتیجه یک انفجار در شمال غرب پاکستان 16 تن کشته و 20 تن دیگر در این انفجار که در منطقه لندیکوتل رخ داد، زخم برداشتند. اما دکتر اعظم وزیری موظف در یک شفاخانه در خیبر جنسی در یک تماس تلفنی در رسانه های کفری در مورد تلفات این افراد گفته است که در این رویداد تقریبا 15 نفر کشته و بیش از 80 تن دیگر زخم برداشتند 29 رجب مطابق 19 جون محکمه عالی پاکستان ایرانکارکی یوسف رضا گیلانی صدر اعظم این کشور سلب صلاحیت شود اقدامی که شاید آن کشور را به دور جدیدی کشمکش سیاسی بکشاند محکمه پاکستان این تصمیم را روز شنبه بر فیصله قوی اعلام کرد که گیلانی بعد از میثات از حکم محاکمه در بازگوشش‌های دو سه ایداری بر ضد زرداری محکوم شده بود افتخار محمد چودری قاضی الخزات پاکستان فیصله کرد که گیلانی بعد از محکوم شدن به تاریخ 26 اپریل برای ادامه کارش در پست صدرات واجد شرایط نبود سی رجب مطابق 20 جون زرداری رئیس جمهوری پاکستان از پارلمان آن کشور خواسته است تا روز جمعه صدر اعظم جدید را کاندید کند این اعلام پس از رد صلاحیت شدن گلانی از پست صدرات از سوی استورا محکمے پاکستان صورت میگیرد این موضوع به دنبال بحث ها در حزب مردم یا پیپلز حزب حاکم پاکستان صورت گرفت که بیشتر پارلمان عضویت آن را دارد هنوز معلوم نیست که چه کسی به حیث صدر اعظمی پاکستان تعیین خواهد شد. هند بیست رجب مطابق 19 ژوئن در هند حداقل 32 نفر روز شنبه زمانی کشته شدند که سرویزی خامریشان از بالا یک پل در غرب این کشور پایین افتاد و 20 دیگر در این یوده زخم برداشتند فرانسه سی رجب مطابق 20 جون، یک فرد مسلح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 مسلمانان در کشور آلمان 25 میلیون جلد قرآن کریم را چاپ نموده در میان کفار توزیع نمودند در همین حال حکومت آلمان به قهر آمده مطبعه مذکور را قفل نمود و صاحب آن را از وظیفه بر کنار ساخت سعودی 27 رجب مطابق 17 جون حکومت سعودی در اواخر نزدیک تقریبا 800 تانک را از کشور آلمان خریداری نمود گفته می شود که قیمت مجموعه این تانک ها به 10 میلیارد دلار میرسد. رسد نایجیریا. 28 رجب مطابق 18 جون سه برادر استشادی تای حملاتشان سه کلیسای نصارا را مورد هدف قرار دادن. نظر به گفته های کفار در این عملیات سیزده تن کشته شدند. بعد از وقوع این حملات جنگ میلیونی مسلمین و نصارا در داخل شهر با وقوع پیوست که در نتیجه 150 تن مجروح شدند. آزربایجان 29 رجب مطابق 19 جون ویزارت خارجی آزربایجان سفیر ترکمنستان در باکو را هزار نمود است تا ویرا بدلیل آنچه باکو فعالیت‌های های غیر قانونی را در یک منطقه غنی از نفت در بحیر کسبین میخواند حشتار دهد ده آزربایجان و ترکمنستان هر دو دوای مالکیت این منطقه را دارند آمریکا 20 رجب مطابق 19 جون یک تحقیق کننده ی ملل متحد از امریکا خواسته است تا در مورد پالیسی استفاده از است تا های بدون پیلوت بر ضد مجاهدین و جای تذکری آنها توضیحات دهد مصر 28 رجب مطابقه 18 جون افراد ناشناسی نزدیک سرحدات اسرائیل و مصر رسیده یک اسکر یهودی را به قدر رساندند بعد از این حادثه نیروهای حکومتی برای ایشان تیراندازی نموده سی را از را آوردند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 سی رجب مطابق 20 جون در مورد وظیفه رئیس جمهور سابق مصر حسین مبارک خبرهای زدنق زبن عشر رسیده است خبرگزاری رسمی مصر مینا در گزارش اولی خود گفته بود مبارک بعد از آنکه از زندان به یک شفاخانه نظامی در قاهره انتقال داده شد از نگاهی صحیح مرده به حساب می آمد اما در گزارش های غربی از قول مقامات نظامی مصر آمده است که گفته‌اند مبارک 84 سال با تنافس مسنوی زندان نگاه داشته شده است و بالاخره چند خبر جدید از افغانستان و منطقه در نتیجه عملیات برادران مجاهد ما در ولایت کندوز یک فرمانده‌ی ملیشه های محلی با محافظش کشته و یک تن اشان زخم برداشت. در نتیجه عملیات استشهادی خواهرین و ام عثمان در شهر کویتک یکی از مراکز فوج مرتد پاکستانی را مورد هدف قرار داد، 13 فوج حکومت پاکستان کشته و, پانجا و دو تن دیگرشان جراحت برداشتند. از الله متعال استدعا داریم که وی را در زمره‌ی شهدای واقعی قرار دهد. پایان اخبار. وأطلب مسمعي برصاصر الشاش أبي كان لا تفرح فقد جئنا بجيش أحمدي يكون للموت كما تلفو لشرب الخمرة فتكانوا لا تفرح فقد جئنا بجيش أحمدي يكون للموت كما تلفو شرب الخمرة آهل لنيل شهادة في ساح أقصان الأبي آهل لنيل شهادة فی ساح اقصان الابی شونمون دگان این بود داشته های برنامه امروزی ما با شنیدن یک تران احمه شما را به خداوند می سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و بلکاته دلی رنجی در لطفه زی دل داره نمی بینم دلیل غربت سرا Kuulijat, kuulijat, kuulijat, kuulijat, kuulijat, kuulijat, kuulijat, kuulijat, kuulijat, کار می باید و جسفی تیانی بی مزمون نو بکار بی نمی بینم دران و ایران ایم ای هن که هر دمکار می باید و جسفی تیانی بی مزمون Nube namebinam jihodhe jati moro kifarmoni moni abu jahlan chi ho kardan dokarore moro kefer mawani bud abu jahla chi hakardan dukarren me binam sitambar madumi mazlum muqawimi be naw binam syori adlu Sitambaarma, dumi, maslo. Muhao mi benavu binam. Shiori adu insofei, badevorena me binam. Dilidan, jidarolut fei, سرا یارا چرا یاره نمی بینم دلی رنجی در لطفه زی دل داره نمی بینم در این غربت سرا یارا چرا یاره نمی بینم نمی خواهم دلو می به دوره نمی بینم نمی خوهم دیلو یوری با یوری نی می را حر گید کی دل به حمتون یک چاش می به دوره نمی بینم فی ما ایما دیسان گردو azmi biranna foy kazaiyo shonisustun sur fido kare name binam fidoi ma disangardo ribo azmi biranna fidoi ma disangardo ریب عزمی بره نپای کزی آشانی سستان سور فی دا کالی نمی بینم دیلی رنجی در لطفه زی دل داری در این غربت سرا